اون چه باعث خنسا شدن این تره عربستان سعودی و امریکا و مستکبرین شد چند عامل بود اولین مسئله ما از بد و شروع انقلاب این مسئله رو شاهد بودیم و اون انایات خدای تبارک و تعالی و انایات ویژه بقیت الله الاعظم در این کشور دومین مسئله هدایت و رهبری حکیمانه و بهنگام و شگفتی ساز رهبر معظم انقلاب در جای مختلف. تسمیمات سازی رو مقام معظم رهبری گرفتن البته بعضی از مسائل رو به جان خریدن امروز هم بعضی به دنبال اینم که بعضی از اونا های اقتصادی رو به گردن رهبر مظلوم بندازن کدوم عقل قبول می کند؟ سیاستمدار سیاست مدار و آگاه به قوانین اساسی ایران قبول میکند حل مشکلات اقتصادی که در گرو مدیریتی مدیران ما و سران قواست ما بیم ناکرامتی رو به گردن رهبری بندازیم که فقط وظیفه‌اش رهبری و هدایت است وظیفه‌اش این است که این چرخ از گردونه خارج نشود این نظام دوچار تزلزل نشود چرا باید این کار اتفاق سومین مسئله که متوجه شما مردم هست بصیرت مردم انقلابیست عزیزان بصیرت خودتون رو در فتنه های مختلف نشون دادیم احسند به شما ولی مراقب باشید فتنه هنوز تمام نشوند و تا زمان انتخابات و بعد از انتخابات ادامه پیدا خواهد کرد اونجا باید مراقب باشید این فشار حد اکثری که مستکبرین علیه نظام ما طراحی کردن این به این راحتی از بن نخواهد رفت. مسئله بعدی که باعث عدم تحقق آرزوی دشمن شد مسئله فداکاری نیروهای امنیتی. چه نیروهای انتظامی. چه بسیج، چه دوستان در اطلاعات اینها واقعا اقدامات خوبی را انجام دادن. اگرچه ادهی هم به شهادت رسیدن. در کنار ده ها انسان بیگناه هم که پشته جدن. ادهی از این جوانها و این سربازان به شهادت بسیدم که سلام و دروز خودمون رو در ارواح اون عزیزان نسار و ایسار میکنه و آخرین مسئله ها به اقدامات کور خدای تاوارک و تالا دشمنان ما رو احمد قرار داد در فتنه هشتادهش وقتی آمدن با امام حسین درگیر شدن خیمه های امام حسین رو آتش زدن یعنی قبر خودشون رو کردن امروز هم همین مردم ما به رهبرشون عشق میورزن. مردم ما بسیرند، مردم ما ولایت مدارن. خدا خدایا به همه ما بسیرت انایت بخیرند